این آقای که سر انجام و شده. به اونی که راهش ازدواج. باید برید دنبال ازدواج. همین که اقدام کنه به مثلا کارهای اولیه دنبال خانواده مناسبی، فرد مناسبی بیوکته، راه برایش باز میشه. جریان پیدا میشه برای کار خوب، زندگی انشالله بهتر. علتش هم معلومه دیگه. این که میگن ازدواج بکنیم، بعضی میخندن. <تصفيق> میگه بابا جا من دارم، میگم که پول ندارم. تو میگی برو خرج کن. آخه اومد پیش پیانبر ارز کرد که من خیلی دستم خالیه حضرت گفت صدقه بده متعجب شد، می رو ما خندید؟ تو دلش ها خندید که من به این میگم چی جونی میتونم بیندار پول برای مثلا عمر اولیه زندگیم داشته باشم، این میگه شیطیم بده به دیگران حضرت خب نبی خدا بود متوجه شد ترماییش کردن که شک نکن صدقه ازدیاد ماله ما معتقدیم دیگه معتقدیم که خدا تواناست است نه تنها مثل دیگران توانهی داره برترین ها رو داره همه یه رو خودش خلق کرده از جمله مخلوقاتش ما انسان ها هستیم یک گوشه از خلقتیم همه چی رو خلق کرده توانش خیلی زیاده او میگه این کارو بکنید ولی خب ما قیاس میکنیم خنده او میگه یا بابا من میگم این گوزم رو بردار یک گوز دوبار میگه روش بذار مثلا من میگم کار ندارم میگه برو یک برنامه دنبال کن که کار دوبله میخواد مثلا الان دو شیف باید کار کرد اگه توان داشت میتونست مثلا خوابش یه کاری بکنه با قرص چیزی لطمان سه کار میکرد که زندگیشو به چرخونه شما میگید ازدواج کن